از صل على سيدنا به بحث تنجیم یا بحثش تمام شد اکثر که متعلق به بحث نجوم و علمی و محاسبات علمی و بحث‌های علمی یا بحثایی که الان به لحاظ ترکیب مواد ستارگان و چی نورشون و بردشون و حرکت اینها با بحث علمی هستن اینا رفتی هم به عالم فقر ندارن و قرمتی هم بر اینا نیست یه سین اقاید جانوی بوده حالا از اقاید خرافی سن بوده سا اقاید سن مثلا میم خرافی اونا, اونا هم بحثی این که اونا چون عرضش علمی ندارن یعنی میشه کرد. از نظر عدمی قابل قبول دیستن یه بخشن وقت به مسئله عوالد و کفر و ایمانو که اون هم از خیلی زوابش خودش رو داره و از اصلا من فکر بکنم شاید بعد از این در بحث آینده مقاصر محرمه بحث نجور اینقدر یا معتر نشن این معتریشون صاحباً در این نجوری میکس ترمیش خارسی دیگه خیلی از حرفهایی که در اینجا شده شده شده مثل موزه باستان شناسی موسیقی باست الان اصولن علم منافذ دیلم ما به نجوم و ستاره ها و اینا نگاه کنه. هیچ فرقی نمی این اساساً دیدگاه نیست اصلا. یعنی چند ماه بحث کردیم به نظر ما این سنگین بود و زیادی بود. برای سایر غیر ضروری چیز بذار. علی چه شما خان یک مطلب رو بخواستون ارج می که ظاهراً احتیاج به این تحقیق دین نگارن، فر اون روایات اگر کار میشد، اثبات میشد، تشخیصش می هم شده بحث تاریخیش کافی بود که انجام داده شود. بقیهش در حقیقت بیشتر جنبه نقد بود یعنی البته در دنیای علم هست دقت در بخونید خیلی از مطالب علمی ما مثلا که بحث تئوری معماری اگر 100 جلسه بحث میکنیم، تقریباً نزدیک 90 جلسش نظریه. آقای معقنایی یه جور قابل درسی، صلاح نیست بیشتر بحث ما نظریه. اثبات ما شاید 20 جلسه بیشتر داشته باشه. بیشترش نظریه در جلسات بحث که حالا علمی بود. هر از ما در نجوم الان بحثایی رو که مطرح می‌کنیم خب بخدا الان مطرحین در سطح علمی دنیا مطرح نمی‌کنه خب یه نباشه ما بخندیم که دورتر و نظریه رو در اصلا مطرح نمی‌کنه اما یه چیز هست که اون اون رو من خاصا توضیح بدن چون دیروز هم عرض کردیم مثلا ما دیروز خیلی در جلبرایی کشیدن تاثیر یا یا یا مریخ رو حتی بر نبات و معدن و حیوان و جماعت رو اینها بذاشتن که مثلا پلان مثلا فرصیم گل راه ده اون تحت تحصیل مثلا فرق است مثلا یا اطارده یا مریخه یا پلان چیز مثلا زهره مثلا تاثیر زهره و طبع زهر اینطوره از کن دیروز که من این مطالب علمی نیست و اثبات علمی میشه. اما یه چیز هم هست تو در وردی از روایات آمده اون نکس من ایک توضیح عرض بکنم که شاید منشه شکلگیری اون های قدیمی هم یک مقدار این بوده اون دقیق بکنید این الان از نظر علمی ثابته یعنی که مثلا این منظومه شمسی در اصل یکی بوده ففترکان سماواتار از غرف کن ففترناها این رو با خدا باز کرد ما اون مواد اصلی که در خورشید بوده که بعداً در زمین منتقل شده یا در سیارات دیگه اینا یک مواد مشترکی دارن مثلا سدیم دارن چی دارن پتاسیم دارن از آلومینیوم دارن مواد دیگه ذکر شده آهن دارن اکسیژن این مواد همچنان که در خورشید بوده در زمین هم شده بعد در زحل هم هست نفسش در ما هم هست در مریخ هم هست اصطلاحاً هست و نسختاش مختلفه این در روی کره زمین حالا یک نظریه یعنی من چون این نظریه ی علمی جدیدام خیلی اعتقاد دارم مثلا اون نظریه زیمورادینه خیلی اساس درست ادعاشون اینه که مثلا بعد از اینکه این مثلا قسمت خاکی جدا شد و بعد تبدیل به قطعه بود و بعد ماج رخ جدا شد و بعد از آتشفش خوش شد و بعد از آتشفشانش یک نهر خاصی آب‌ها تولید شده یک شری داره مثلا در 500 میلیون سالقاً تخمینی که زده میشه مثل میلیون ساله هر در زیر اوگیانوس در لجن اوگیانوس اون تکسلول های اولیه به وجود آمدن که من میکنم این بحث مثل اون قدیمه سهت اون این موجودات اولیه با وجود اون مثلا لجن که تحت اوگیانوس بود اینا مثلا تکسلولی دو سه شد دو سه شد شد تکثیرهایی که پیدا شد و یک سیر تکاملی آورد، شما اون بحث نظریه داروین دیگران بشین، یک سیر تکاملی خودش اونها روش کردن. روش اونها بهمون به موادی بود که اول خودشون در لجنهای مثلا زیروغیانوس ها بود، مثلا پرسومی. حالا تکثیرش و خصوصیات اجزای خودش. خب اینها تدریجا تشریف شد به حیوانات و حیوانات کوچیک و بزرگ و کیفیت به اصطلاح تأثیر اون آب و تأثیر اون لجن‌ها ها در رشد این حیوانات و حیوانات اولیه به چه صورت دادن؟ بعد صورت دیگه بعد تدریجن که یک کرایند خاصی که حالا من نمیخواهی به اون بشم مثلا حیوانات اولیه داره یک لایه بودن نیست یک برگه بودن اینا مستقیم سلول‌هاشون هاشون از اون محیط اصاب از آب و از اون لجن، من قضا لازم میاد بعد اینا شو دو لایه بعدش سه لایه بین این لایه ها فاصله هایی شد که بتونه اون مواد رو برسونه بعد این لایه ها تا 5 تا 6 تا ای بینشون فاصله شد که همون ها میگن رگ های خونی ما این رگ ها رو میگه تصویر میکنن فکر میکنه این رگ ها مثلا این دست شما الان ممکنه ده هزار لایه داره بین هر کدومش باز رگ هست این رگ مثلا خونی هر رنگ خاص داره این همون موادی که ادعا می مثلا لجن های اولانوس بوده به این منتقل شده این خضادی که به این سلول‌ها ها می یک تصویر خاص خودش خب طبیعتا اون موادی که در زیر دریاه بوده خوش شده رو زمین آمده از روی زمین, از روی زمین آبا من نمیخوام اون شرک کامولش رو عریف بکنم یواش شواش توسط گیاهان چون خداوند در گیاهان این نقش رو قرار داده شما فرسکن تقمه فرسکن تره یا سمیزی یا جعفری یا فرسکن مثلا فرسکن به این که پیاز یا پیاسی رو زیر زرب می بگیدارین خیلی شکل های مختلف داره خفره های کوشید داره حفره داره نداره خفره های شوزتره سه گوشه اینا معتقلا این شکل که خدا بینیم بعض داره این در حقیقت مثل این های یهده خیلی قدی هست یوری قرار داده شده که هر به خاطر این شکلی که داره یا قفره که داره یا کوچیک یا بزرگ یا مسلسی یا متبر یا مربع یا چارگووش یاکنتر میشه. این معش میشه که با زمین که وارد میشه با آب و بعدا بر اثر نور خورشید یک مواد خاصی رو به خودش بگیره. مثلا یک سبزی طبق همون خثرتی که داره کلسیوم و زمین رو. یا از آب یا از بیشتر بیشتره یکی فرض کن ویتامین آ بیشتر می‌گیری یکی آهن بیشتر می‌گیره مثل کاهو چون نحره‌ای که بدن ما خدا خلقت کرده شده این دوری که سلول‌ها مستقیما اجزاء بل و خیلی ریز آهن رو نمی‌تونه مصرف کنه سلول بدن ما نه آهن رو مصرف میکنه نه روی رو مصرف میکنه این آهن اگر راست در ضمن کاهو کاهو رو که خوردیم جذب سلولی ما میشه اما خدا آهن جذب نمی‌شید این ترکیب کاری خداوند زدن در قرار داره اون وقت اینا اومدن در محاسباتی که دارن مثلا میگن گل چه مواد از زمین برسه اون تخمشه شده کاوچ چه موادی چه تره چه موادی باز اینها توسط انتقال به حیوانات مختلف مثلاشون حیوانات گوشخارن یا به گیاه خارن در شریعت مقدس کلا حیوانات گوشخار حرام شدن یه چیز ترکیبی خاصی هم داره این در قدیم هم در تشریف گوشت حیوانات یک بحث خاصی داره که اونها اصولا وقت ترکیب به اصطلاح گوشتیشون جونیست که در انسان انسان مزرده بلیزا از اونها به جنبایی داروی استفاده میکنن جنبایی هزایی به خلاف حیواناتی که گیاه کارن طبیعتاً حیوانات گیاه کارن طبیعتاً حالا کرگده هم گیاه کار حالا نه شده بارده برمیشه میشی طبیعتاً تقصیر یک نحوه خاص سلولی دارن که این جذب بدن انسان میشه تقصیر وقتی این منظومه شمسی در اصل واحدی بودهن خاصی ممکن است در کره زمین ما به ما مثال میخوام بگم ویتامین A در یک زمین ها بیشتر باشه ویتامین B بیشتر باشه آهن بیشتر باشه چون این تقسیمات دارن چون الان جاش اینجا نیست خیلی مفصل تقسیمات دارن به یک لغت دیگه، غیر از اون چیزی مثلا کربن و میتان، آب و اکسیژن و هیدروژن، یه اصطلاح دیگه‌ای دارن، دیگه ده کل قومن اصطلاح. پس بنابراین اون وقت مثلا دقت الان هم به این نتیجه رفیدن این بخشیه که من امروز عرض کردم، الان مثلا میگن ذهن بیشتر این دسته دیگه فرستون تشکیل شده، مثلا مواد آهنی درشه. خب همون مواد آهنی که در ذهن هست، زمین هم همون ما دعنی که ترسیب کاهو به کاهو منتظم میشه بعد به بدن ما این تو بدن ما هم هست و اینا می آمدن و می گفتن که مثلا کاهو زیر نظر دوحلی تفسیری که باشن شما این روز بیشتر تفسیر معلولی دارن در قدیم آمدن تفسیر ایگه گفتن من چون گفتن اینجوز خرافاته این توضیح رو بدم خرافه صرف هم نیست تصور نشه خرافه گرفته اون تفسیر الیشخ قرافر و الا الان هم به همین نشایج رسیدن فرض کن انا اجزا تشکیل دهندش این اجزا بیشتره در زمین از اون اجزا هستند بعضی از دیوها هم اونها رو جذب میکنن بعضی از گیاهان هم آهن رو جذب میکنن بعضی از دیوها فقط مثلا قسمت روی اون رو جذب میکنن اونا یک تفسیری خاصی هم برای معادل که هفت تا 8 درس میذارن میدونن یه تفسیر خاصی در تشکیل معادل داره نه این تفسیری که امروز چی میگه یه تفسیر دیگه دارن حالا اونجای خودش غرض این که اینا که اگر گفتن مثلا فلان چیز با زحل رابطه داره زحل روش موثره یک مقدارش هم علم جدی قبول داره ها که بیرونشون عرض کرده همش خرافه هست. تصور نشه خرافه هست. چرا چون مثلا گفتن در پس که کره کاره ما که تجزیه کردن فلان ماده بیشتره همون ماده چون خواب ما بازمین بازو هر باز همه یکی میزن در خورشید اون جدا شده. هم ای که هست یک مقدار از مواد در اینجا بیشتره یک مقدار در اونجا اونم آمدن دیدن گفتن مثلا فلان گیا این ماده آهنش بیشتره از گیاه دیگه بقیق میکنی این رو که الان خواب بگن ماده آهنش بیشتره دان صابر بجای آهن چی میگفتند؟ مثلا انصر خاکی بیشتر یا انصر آبی چه انصر هوایی چه انصر آتشین اینجوری حساب می‌کردن. حالا نمیخوام واضیون بحثا بشن چون کلا از نظر چون من روز عذر کردن اینا خرافاتی این توری روز عذر کردن خدمتتون این مطالبی که اونها نوشته شده یک مقداری جمله صحیحه. باکن اشکال در تفسیره. اونا خیال میفرم مثلا این گلگاوگون تا تاثیر کره زهره زهر. است. این گزی هم قبول دارن قبول میکنن؟ میگن مواد دیگه داره این مواد در زمین گرفته این ماده ای که در زمینه در ماه بیش از زهره است مثلا در زهره بیش از ماهه یعنی اینطور نیست این بحثی که من دیروز عرض کردم به ذهن آقای درست بحث خیر الویی که در کتاب خرابادین کبیر آمده جمعه ولذا خیلی جمله صحیحه و لذا یک نکته خیلی مهمه که اخیراً حتی از دربیاش از از 40 50 ساله خیلی ذهنشون رو مشغول کرده این نکته است که گایی اوقات این مثال پی نفسه صحیحه از این برم بشر که نرفته زوحله دارن و فلان دارن بسیارون با تجدیه نور زوحله میشونم بفرمه موادشی ها رفتن اونجا مثل ماه و مرهی خود اون وقت که نرفته بودن این تناسب رو از کجا فهمیده این تناسب که تا از این مثال گلگازمون با زوحله اون یکی با مرخی. حالا من که میام تحلیله علمی میکنن، کنم، میگم راست مثل تو یک حدی درسته. نه حدی که اونا علت و معلول و از و اما کل جمله درسته. از اون طرف اونا نگفتن واسه این قضیه چیه؟ دقت کردید چی خواهر میگم؟ این چه رابطه‌ای بشعر پیدا کرد؟ که بیاد بگه گردابزون با فلان تصاره ارتباط داره؟ درسته ارتباط رو الکی گره بودن؟ حالا معنی خود چه نه؟ انصافا هر کد خیلی باطل نیست. این اجزایی که تشکیل در این گیاهه این در اون کوره بیشت کوره وجود داره و از تفسیرشون الان اینه که من همه در خورشی بودن جدا شدن خب طبعا یه بابده بودن دیگه اما خواهی نخواهی در یک قسمت از ماه خلان ماده بیشتره تو این گیاه همون ماده بیشتره چطور شد این قدما بزنی که به ماه برن بزنی که به زهر برن بزنی که به زهر برن. اما در این رابطه بین این گیاه و اون ستاره رو کش کردن. مشخص بحث غیبی اون من کل بحث غیبی نیست، بحث بحث غیبی نیست. این حواس خب یک جواب به سور طبیعی قوه حدسه یعنی سور طبیعی الان جواب قوه حدسه یعنی منجمی و همین تسارشانس ها بر اثر گذشت هزاران سال این دو تکلب از استادشون، از استادش این قوه حدس اینها به اینجا رسون که مثلا این مازه سوزوهد هست در بعضی از رواست ما داره که این توسط وحیه شبیه مطلب ایچه ها اصف این مطلب رو انبیا گفتن مال منجمی هم نی البته این در روایت ما آمده من تو آدعلو صلی الله که اصل خود از همون تصویر اصل این رابطه بین این که هست که الانم این ثابتی گرفت از الان, علمی الان تفسیر علمیشون چون همه یکی بودن جدا شدن تا کفارش شده هم خوای نخواهی ماو در یکی ماو در اما قسمت هاش فرد زمین را برهم کنه خود خاکهای خواه. جامعه بغل زمین را برهم کنه بلزا میواد میگفته مثلا چون این زمین چون شورزاره مثلا چه بهتر میشه چون این زمین چون شینه خاصو خيال بهتر میشه میواد این محاسبات خاص درن که برنامه بخواد متارض بشه میواد از زمین رو بر حسب خصایصی که داره برای کشاورزیه برای چیزی محصلی بگیره اونجا کاشته بشه که اون محصول جزو گیاهان غذایی باشه یا جزو گیاهان خوراکی باشه یا جزو گیاهان دارویی یا هر دو باشه یا دارو غذا باشه یا غذا دارو باشه این انواع مختلفی داره اینه. یه تفصیل که در روایات ما آمده که این کار وحی است. بشر به این درجه نمی بسیده سابق بودن اصمان اونو انبیا هم روشن نشده در بعض از روایات ما اسناد به اهل بیت داده شده لا عرب و من عرب. و در طول تاریخ این انبیا بودن که این مطالب رو به, به, به اصطلاح به طب و به نجوم و به علوم طبی سرا... سرایان دادن این ارا دهم می‌خوام واین بحث امروز اگر گفتم اینم تکلیفشو کن راه سومی که ادیس الان اعتقاد پیدا کردن خلاصی اون اعتقاد ایناست که تمدن‌های بشری که الان تمدن بشری که ما الان داریم این اولین و آخرین تمدن نیست قبل از ما تمدن‌های دیگری بوده و اون تمدن‌ها فوق العاده از ما پیشرفته‌تر بوده فوق العاده این وسخ خیالات نیست اسافیر نیست مثلا اونها به ستاروگان رفته بودن حتی بدون حاجت به موشه یا به ماهواره مهواره یعنی اونها قدار پرواز داشتن حتی بدون حاجز به هواپی ما یعنی اونها یک جوری با قوانی طبیعت آشنا بودن میتونستن همون قصه معروف سلیمان و که سلیمان ها معتمن قالی سلیمان رمز پیش سرعت سنعت بشری نه یک که باشه توانسته بودن خالی رو به نحی تاحهی بکنن کهطر تو این ریش های خالی و یک نح معنی بالا بکنن خود بعد او رو بالا ببره خود همون قوان نمی ندرس و آ بین ای بتون رو بالا ببره اصلا احتیاجی به موتور و بیر حرو و تو اتاق کی بیارد. خیلی راحت میتونستن به افلاک دیگه بن بدون این که این نوشته دا حال رو شده ماواردین بحشن. اینا معتقددن که تضون بسیار پیشری و شب که از زمان ما به مراع پیشری کرده. به کراس بیشتری رستن با نجوم و با ستارگان ارتباط مستقیم داشتن معلومات مستقیم از اونها داشتن و این معلوماتو رو در لابل های بوده بعد جنگ بسیار بزرگی در گرفته و اون تبدون از بین این وقته مثل بقوله مثل ها جونه 65 سال مثلا یه نهلال دایین و بوده این تبدون نه حالا شش و پنج خیلی کمتر از این هر از بین داشت، لکن بعدها مثلاً هست که از اونها یه نفر مرد بوده، یه نفر زن دو تا مرد و دو تا زن، اما چند کدی این بشر جدی دوستان پایگوزری کردن، که تصور اینجوری میشه که اون بشری که قبل از ما بوده و همین خسارت داشت، وشون از سری دیگه برید، در عین که این معلوماتو اونها دادن این معلومات چیزی بودن 9000 سال قبل 8000 سال قبل موجود بوده، الان در دست ما از دیگر است. اون رابطه ما با این آسمان در حقیقت این در تمدن قبلی بوده که از این رفته علایهانه به نظر من هر دو بحث شیرینه هم اصل رابطه بین گیاهان زمینی و نزاج هایی که ما داریم با اون که در خصوصا منظومه شمسی وجود داره و هم اون سر رابطه که این سلکی بود که از کرده در روایات ما اصرار رو وحیه این کار بشن نیست و کار انبیاد یه کار الهی بوده یکی از کارهای های این بوده یکی از کارهای انبیاء به هر حال کنی این وقتی که می من خارج شونیم که ان شاء الله توضیحی مختصری باشه رازی در منذر و جبل قمر فلعقر چون سوال شده در دوه سنت بله در کشکول های خفای... من اون در یک مرد خواستم میذارم در دو جا باشه مرد دومش به نام پدرکند در کشکول صفای حجونی نقل میکنه از امیرالمومنین و دو تا نقل داره که بر قمرفل فلعقر هم قضا فلبه جلد دوی خفا کتاب شیرینی انصافا شبیه این کتاب هم در شیعه بنویسیم خیلی خوبی در یا در کل دنیای اسلام بنویسیم انصافا کتاب خوبیه خیلی از احادیث و غورده اون وقت متعرض بحث سندی و اینکه آیا ثابت موضوع زعیفه متعرض این قسمت شده اونجا به امیر المؤمنین نسبت داده اونجا توی سفر هم داره اونجا توی یک متن سفر هم داره اما دقت رو کنیم موقوفاً علیه بانان کلام امیر نسبت داده و عجب از او باز نقل کرده از از معمون که معمون عباسی از پدرش حارون از پدرش نهلی عباسی از پدرش منصور از پدرش از ابن عباس از علیه بعد گفتی که این حدیث سندش خلافات چهارت از خلافات تو سندشن اگه خلفا رو تفصیل بکنیم سرش منفطره حالا به هر حال یک بحث اینجوری هم احتمال میلم شاید یکی از عوامل اشتهاری حریصا بین ما چون مثلا مثل مهمون که خلیفه بوده تاثیر جدش از علی بن ابی طالب نرس چون از کن که چرا در از, از کن که این شهرت فتوایی شهرت عملی به قول هایون استراحت به این شهرت عملی میگن این شهرت عملی شاید این سیاسی هم توش بوده البته این نسبت به خود امیرالمومنین ان ام رسول الله صیلا ع اهل سنت مرفوع نیست مرفوع حدیثی که صحابه از پیغمبر نعمل کنه موقوف اونجوی کلام خود صحابی است و علی وقفه علی خود موقوف بر اثر امیر از نیست شایدی که از اسوار اشتهار مذهب این بوده که به امیرالمومنین نسبت داده شده علایخانه به عنوان یک فرهنگ نیست اما به عنوان استناد متن هنوز کار میکنه این راجبه این مسئله تنجی. در از کردم سابه که ما باید مسئله تغییر خلق الله میشیم حرف ته که آقای متعبض بشن چون ظاهر آی مبارکه که از محرمات دیگه چون در ظاهر آی مبارکه کارهایی که به شیطان نسبت داده شده یک آیه هست که کارهای شیطان داره وَلَا عُلَلَنَّهُمْ وَلَا عُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَت بعدانه قرق کردن و و پا قخیش بیایان گوش حیوانات رو ببرد ولی آمرا نهان له یا غیواران خلق الله یکی از عواامی که شیطان میکنه تغییر خلق الله چون این تغییر خل الله در عنوان مقاثر تو استاد ذکمته گفتیم بعد ذک میشه و که چون در بح حلق لهیه تو استاد اضافه قمونده اد هم اسرار بهم به این آی تک میشه بدیع دیگه بهتر این که خصوصاً مساله حلقله ای این متعرضه است دو مرحله یک ای بار اینجا بیاریم یک بار تو حلقله خیلی مناسب نیست پس این بحث حرف ت که تقدیر خلق الله باشه ان توی بحث حلقله ای در بحث ها مساله حفظ در محرماتی که در قسم چهارم مرحوم شیخ انصاری متعرض شده حفظ و کتب ظلال حرامون فجمله خاصه در نوع 5 چه چهارم مرحوم شیخ اتفاقاً مرحوم شرایع اولین کسی که این کار در جامعه کرده شرایع مصادیق محرمات پنج نوع تقسیم کلی کرده نوع اونی که فی عمل حرامه پس معامله بر حرامه این نوع چهارومه سنوع شده نوع پنجم دیگه واجب که میاد ان شاء الله اخ شیخ طلب حروف نجاری محرمات رو آورده البته انصافا یکی از, از محرمات مقصد شدنش روشن نیست میشه خیلی از محرمان ممکنه مقصد باشو ایشون ذکر نپرمیده تغییر خلق الله چرا مقصد میشه کس میشه پول بگه باید تغییر خلق الله اگه تغییر خلق الله رو این مسائل بارگری های زنانه که درست رو الان نمیدونم چیه استنساخ میگن عربا مشابه نگاری چی یا نه یعنی استراد پاسی شبیه سازی استنساخ میگن استنساخ یا شبیه سازی این مسائلی که آمده خب پولم میگیرن برای همین کارو انجام میدن ان شاءالله اینو میدون اونجا و تراز میشیم مساله هفتم از اموری که فیزات حرامه و انسان بخواد پول به ازای اون بگیره من درست نیست. حفظ و خطو و زلال حرامون خیلی جمله این خیلی جمله به خاطر اینکه حد و حدود هم زلالش روشن نیست هم حدزش روشن نیست نگاه ایشون فل جمله گفتن بلافلا کماف تذکر این دعوی عدم خلاف از تسریه علامه و از منتهای های علامه هر دو در کتاب علامه ما طبق قاعده ای که داشتیم اجمالاً کلمات مرحوم شیخ انساری رو می‌خونیم و بعد ببینیم آیا این مسئله درسته یا درست نیست وراهایی که این مسئله داره و مناغشاتی که خوده چیه این عبارت عنوان عبارت شیخ ویدولو علیه داله بر این مضاقن اله حکم العقل به وجوب طرف امادت الفساد ای چون این چون حکم عقلی از اول که ماده فساد که زلال باید برداشته بشه این حکم دلیل اولیشون چون الان ما فقط خریعاً میخونیم نیم مخیم بازه دوم لمن المستفاد لمن به کسی بخونید من قولی حالا من الناس منیشتری لحوال حدیث بگیم لحوال حدیث سابق کتوب زلال میشه لذا من حدیث تفسیر شده به جناب و موسیقی و این به اصطلاح نوارهای فاسد و اینا نه این شامل کتب زلالن میشه البته بمن الناس من یشتری بگیم اگر اشترا شد حجش هم مساقش به طریق اولا قبیح میشه نه دلیل دوم و امر بر اشتناب ان زور این سوم دلیل سوم روایات آیه مبارکه بشتن به قول زور از کردم زور به فت خودش اصلش معنای اعوجاجی وعنی کجیه این سینه ای انسان که اصطوقانش به این زور میگن خود اصل زور معنای کجیه از این کلمه این زور خودش معنای اعوجاجیه یعنی خط شکسته خط مستقیم مستقیم به قوله نوز که انها در کریم یک خط مستقیم صلاح مستقیم داره و یک خط هایی شکسته به اصطلاح یک اعوجاج ها به بغداد هم که ذرا میگفتن گفتفتن اسم بغداده چون از بغداد برداد رو که منصور دووای بنا کرد در اون قسمت دژه قبل بران که فل میخوره یعنی آب که میاد دژه یک نیم دوری میخوره اونجا رو برم کرد که بالای تیزفون بود تیسون که مدارن پای تخت بود پایین تر از این بود. این تشیص در با الغشون مهندسی ومجیین که این قسمت اون بالاتر. و مدارن تا بالاتر تیسون مدار انتار کسال، هشه اینجا آب هوای بهتری داد به فیلم همینطور بگیه لیالی بغداد همیچه از قدیم معروف بود خب علاستباه نشابور و خوصنه بغداد اینجا توی ضربور مسئله ها بود خوصنه بغداد پس زور اصاساً در معنای کج و انحرافه در مقابل مستقیم که راسته مقابل بعضی از حکم نوشتن اگر یک میلیون خط مستقیم باشن همه بر هم انتباه دارن اما خط شکسته نه بر خط دیگری نه بر خط راست انتباق ده نه بر خط شکسته دیگری کج نه بر کج اینطباقشون کدی ها مختلف هم میلیون ها سورت جما از خط شکسته و کج اونتید تصویب بگنی این خط شکسته نه بر خط راست انتباق ده نه بر خط شکسته دیگری حضور تعبیر زیبایی وله امرو به اجتماع این قول زور و یدون لعلیم سه تا زورن، قولهو این قول که علی یدولو یدولو علی قوله فی ما تقدم من رواهت سحب الاغود اینم دقیق شارمیشون اینما حرم الله تعالی از صناع قلوت یجی و منح الفساد و محزن که این حضر خدود زلال و نوشتن اونها چاب کردن اونها تصحیف اونها صحافی اونها همه اینها یجی و منح الفساد و محزنه بل قولهو قبل ذالک او و به کف. که کف شامل زلال هم دوشه فی جمعی حجوه المعاصی اوبامان یوه همه به حق که بگیم کتب زلال سامان این هناوین هم بشیم این دوتا چهارتا شد پنجام و قول و علیه سان فی روات عبد الملک المتقدمه روات عبدالملک الملک که خوندیم از کلیم در اون مسئله معروف رویان عبدالملک که سندهش مشکل داره. داده هیسو شکایل اصادق علیه سان منفضده در این روات ا هم و این که مرمون سال و وسائل پندر رویات آمر به احراق نداریم آمره همین رو بیشتر نیست اینه ابتلوتو به نظر نجوم فقال اتغذی قلتو نم قال احرق کتبت که بگیم احراق کتب نازل به اینه که این باید معدوم بشه پس حفظ و نوشتن و نگهداری و انواج اینها جایز نیست بناان او ان الامل الوجوب دونر ارشاد الخلاص و نه اصلا یک امر مولوی است از وجود یک امر موجه این امر را از انسان و سال هم فهمید همینطور که فه انسان معمول است به احرام این کتب و مقتضا ال استفسار فی هذه الروایه اون وقت شنو میکنه از اینجا مرحوم شیف تا اینجا صرف کده وزرا حرام اون وقت شروع میکنه, میکنه یواشج به مقتض به بحث کردن خلاصش اینی که آیا کتاب قطب الزلال حرامه یا به عنوان علیه من زلال و الفساد در اقتصاد بین این, این یواش و شواش مناقشات و شیخ شروع میکنن به بیان کردن و این اول مناقشه و مختصر الاستفهام یاد روایت انه مقصد از پس این اطلاقی در مقدمه گفتید در اول بحثتون ابز قطب الزلال حرامه این نه و حالا این وقت دارم اعتقاد دم من انسان به ما یجی و, فساد و, از اون هم جی و, فساد. و من هول فسادو میذارم ازمون دوباره و فساد بله مصلات مؤهمن یا مصلات محققه نادره لقبار دوها حالا یجواز ولی ابقابو مجاز احتمال فراتر مصلاته بعد در اتحاد سالم دارید انبه بذکر از زلال لایه همه دنبال هیچ اتحاد سالم وسط زلاله که قطعا احتمالان غریبه گوش شد. نهبی منابعششه. فعلا بیکن که دلیل یا مصلح مصلح ما آرز و مصلح بود. بعد، بله. آخریه فعلا دلیل علی القمره، الا انیاس و تل اجماع. یعنی شیخ رضو الله تعالی در یواشش نهبه اصل استدلال و نتیجگیری رو به شما یاد میده. از یکی از ادیان ما اجماع. این روایه است. پس اگر اش بود میشه تعبودی و همون اسلحه میشه اخسو کنیم یا همون می‌دونی دکتر بزرگ است. اگر اش بود اگر این نکات بود یا چی اومد هل فساد مهذن فس فساد. اون جایی که فساده مطلق نه. ما اصل در هر مسئله هم دلیل توی اصل مسئله رو پیدا بکنید هم اون دلیل رو در کرو مسئله بکشیم اگه مسئله دیگ یه همچین کدوم زلال حرام میونه فروع مسئله اگر کتاب زنا یک آقایی گرفته در اینکه نغرب بکنه رد بکنه هیچ مسئله ای هم برای نداری یا مثلا یک شخصی که خودمش خصوصی بچه‌هاش همه بی سوادن هیچ خاصی میکنه یک ده رفیق کتاب رو برده تونه یک نفر با سوادن نیست هیچ مسئله ای برایش بار نمیشه اگر دلیل ما اشماء باشه میشه تعبدیات ما. اگر دلیل ما دفع مصلحه و نه خطا باشه لایحه این نظر میمونه می‌گه الا ان یشهد این یک دو ها مثلا اشکال هست خب خبرم درو اگر آره اشغال بنابراین چون ضمانه او آورده این اشکال پیشونده اجماع همیشه به اطلاق عنوان معخذ نفی الخلاف تمسک به اطلاق معدل اجماع الذي لا يكثر عن نقل الاجماع بریم خود یعنی به عبارت خودمون مدعی بشیم چون بعد از آلمحاسبا مدعی شدن این مسئله رو ملتزم میشیم و انصافا خیلی بریده که معقده اجماع همین اطلاق داره چه لوا بوده زيل اینجا اون نوشته بگیم اجماع هست و با اجماع معامله دلیل لحظی بکنید به اطلاقش مثلا دقت کردید به اطلاق معقده اجماع تناقض نمی کنه چون اجماع دلیل لوپی ایشون بگه اجماع خواهدیم و اجماع رو هم در این لفظی بگیریم اطلاق اجماع و هینه ازن لابد من ترقیه حاول عنوان وارد بحث ترقیه و عنوان شدن که مراد از این زلال باز چیه یک مشکل پر حسدنی بود یک مشکل از ایشون بحث زلال که آیا این اونیست که پی نفسه باز باشه یا اونی که موجب به گمراهی مردم باشه اون وقت مثلا در سن بر سماوی سماویری بس آقای مراجعه من فقط رؤوس مطالب شید بحثی که بعد ما مطالب قبل از شیخ هم مطالب شده. آیا نگه داشتن تورات و انجیل همجز کتب زلاله یا نه اون وقت مرهوم شیخ یه عبارتی رو هم از مقصود و از قدمای اصحاب فقط عبارت مقصود نرد میکنه که الان میخونی بعد دنبال تفریعات مسئله میره همین تفسیرات از این قبیل یکی از سفارهی هم که بعد ایشان داره که قبلش شیخم دارن آیا خریدن و نگهداری کتاب سری بخاری و مصمون دو جا احادیزه تحت انباطل داره آیا اینم درست یا نه همه اینها درسته بعضیاش درسته،, درسته نسوش درسته یه مقدار هم بعد مرموشه در اینجا بارستون که آیا اینها درسته جزا کتاب زلال یا ی آخرین بحثی هم که ایشون داره علاوه کانه باطلن فی نفسه کانه خارج عنه المالیه اگر کتاب مطلبش باطل باشه اصلا مالیت هم نداره فلوغو بده به جزء من الابز المرجول یبطل المعاوضه اصلا معاوضه هم باطله چون اون باطل مالیت نداره پس یه بحثی هست که از حجزه کتب ظلال که حرام است درسی به الغای مالیت می‌خوام این را چه رای که به عبارتی که مرحوم شیخ مرد کردن از که شیخ تمتر متعرضه عبارات میشن. اینجا متعرضه عبارت مقصود شدن بعد نیست عبارت مقصود داره که رو فرده اعرضی کنن مشکل عبارت مقصود این است که مقصود از فرح تطریعی اهل سنت گرفته که کناران اعرض کردیم و اعرض کردیم خوندن عبارات خیلی خوبه اما از او بهتر زرافت هایی که عبارت محسوط این شد نه تو با غنیمت رو نه تو با محبه رو بوده فه امکان مثل مغمم اگر در غنیمت کتاب بود نوزره فه امکان از مباهتن یجوز و اقرارید علیه ها ایچون مباه رو با میکیتیه که بیارتن نزید کلام شیخ همسالی. اگر مباه بود یعنی میکی میشه یجوز و اقرار اقرارید ها مثل کتاب تب و شعر و لغه و مکاس و که دالک و علوم و شریعه فقه و حدیث لانه حاضان مالون اول مباهی و برگو مالون جده وزی یوبار را یوبار را یو شد و, و, و امکانت کتبا لا یهلو امساقا این کلمه امساق برطوره همزه کتب زلام کل کفر و زنده و ماش اشراه دالک زنده مثل مهرجه و ماه اشراه دالک فکل دالکه لا یوزو بی اوه هر از مثل از که مثلا تو غنیمت مثلا اصده بعد مثلا از امکان ینتفع با اومیتی هی الاخسل حالا اگه این کتاب ها رو گرسیم چستیم سابقا مرکبه ها شسته میشون کل جلود اما از وردش استفاده میشه از غلاف کتاب استفاده میشه از جلد کتاب الاخسل کل جلوده و نحوان فهر ناغنی مثلا بله از اون جلدی که بناسا جلدش چرمیه با عرضشیه مطالبش ر اما جیب دش استفاده کردم، نه و امکان ممالاییم که به او ایتی. اما مثلا کاغذ مجاز کاغذ، تل کاغذ، فعل او یومزده، پاره میشه ولی آیا اما سوخته نشه از مامین کاغذ ایلا ولی او چون کاغذ هم دیمتر. و حکم مطرح و طورات ولی انجیل چه داره؟ تل کاغذ. و البازیا میشه. تل کاغذ سه نو لرنه هون کتاب مغیرون مبدل این عبارتی بود که در کتاب محسود بود خوب یک بکنید عبارتی که در کتاب محسود بود خود شیخ در کتاب نهایه نگفته یا خود مرون شیخ مفید نگفته یا اصلا با عبارتی تو حفظ عبود نمیاد انما حرم لا تعالی اصلا اصلا اصلا یجی و منحر فسان و این او این یه تردیم جميع وجود ماضی او باب و دیوهنو به اله اینا تو بحث غنیبت بردن و تو بحث جنگ بردن. از اینجا من یک نکته رو ارضو می‌کنم که آدمش کار بکنم برای پرداد که همونه باقی بحث بشین. یک مسئله یه حفظ کتب زلال از دو زاویه باقی بحث. این آیان ما یه نقداری نظرم قرآتی شده. نظر خود بنده. یک جهد فربی قصه هست. که من تو خونم کتب زلال نگهر ندارم یک جهت اجتماعی هست. حساب میکنه که لذات ارشاد میکنه اجازه چاپ میده خب دقت بکنید اون جهت اجتماعی یک نظره اون جهت فردی من حساب بردم تو خونم به همه خونه من مثلا وقتی تو دین بردم که همه بیسواده در حال انحراف نشدنی اجازه نمیکنه این زاویه فردی قدرت متشکری نه خود مثلا شیخ نه بعد از شیخ استاد نه های فاضل معاصر ما نیامدن این مسئله رو از دو زاویه نگاه بکنید و توجه نشده که عبارت مقصود از زاویه اجتماعی قصه است. یا زاویه اش چون کلمه جهاد اصلا جهاد مال مؤمنان از بدن این مال دولت بوده یه مقدار فروع فقهی در فقه طبیعتش مال دولته این در کتب اهل سنت چون نظام دست اونها بوده. در فقه ما خیلی مثلا زکات در فقه اهلستانه کلن حالت اجتماعی داره در فقه در فقه فردی پیدا کرده چرا؟ چون حکومت در نبوده زکات و همجا به این رو مستحقی در فقه کتوب در کتاب سنی اصلا با حاکم باز بدن یه پدیده اجتماعی این خوب دقت بکنید. این دوتا با همدیده گاهی خلق میشه این که شیفی یک رسط و علی محصول لایت رسط این آمده از این که تو مقنم عورد و غنیمت و نگه بداریم این آمده از زاویه اجتماعی نگاه کرده از زاویه دولت نگاه کرده چون ممکن است که درست کتاب رو ما از زاویه دولت نه این رو عنوان صد درست فکر بکنیم بگیم چست درست درست درست میاره کافیه برای جامعه خوب درست بکنیم ممکن است کتابی باشی اگر چاب بشه برای ده درصد نه فقط قصاد نمیاره اصلا بسیرت میاره آشون. اما برای 70 درصد جامعه زلالت میاره متاسفانه این مسئله از این دو ظاویه بررسی نشده متاسفانه یک نقطه این یک نقطه است. یک نقطه ظریف این است که این مسئله حبیعتا از دو ظاویه موضوع بررسیستی که مقدمه حرام یکی معاونه برقه است آیا این دو مسئله نتیجه شرفت میکنه مثلا این مقدمه است برای ارتکاب حرام یا این اعانه برای اسمه چون ممکن است یک نتیجه در فقه تأثیر فراواد این اینا اصطلاحاً اسرار فکه زرافت های فقه. ما فردا از خواهیم که فرق به این مقدمه حرام بخواهیم هم از صفت یا اعانه برای اسم فرق احساسیش اینشالا عرض می‌کنیم که این حال شما فکر کنید در مقدمه حرام عنوان حرام نمیشه مثلا اگه بازار رفتن مقدمه گوش خریدن خود بازار رفتن حرام نمیشه مقدمه حرام حیثیت تعلیمیست اما در آنه برای اسم شیخم آنه برای اسم جدا حساب کرد اون نقطه فرنیش اینه چرا آنه برای اسم؟ چرا در آنه برای اسم عنوان حرام میشه کار به مقدمیت حرام نداره این خیلی زرافت نکته بیشتا لطیفیه که شیعه و منچه انهی مثلا فروش انگور به شخصی که شرا... مثلا کارپونی شراب روشی این خودش حرام فروش انگور حالا ممکن است این آقا انگور رو به همه انگور تو بازار بسوشی شها نکنه کار به مقدمیت حرام نداریم. یه بحث لطیف سیخیز که در عنوان آنه بر عنوان حرام میشه فروش انگور بشه تا شراب بروسید. اما در مقدمه حرام عنوان حرام نمیشه. بازار رفتن. عنوان حرام نمیشه. میمونه عنوان مقدمه حرام. نه همون عنوان را به خودش نمونه. نه به عنوان ها. من در این جور که ها قبولی